Awe Awe Awe Awe wa nei بسم الله الرحمن الرحیم چقدر بر زکانس لایگر مقرر می‌تانم آرسته بهی و درمکه ساقو صلوات بن. با برنامه کدیکه لازم جر برنامه‌ی وانی فارسی لخدمت و آذیزان دی. ل برنامه را بردو ده وتمان که محمد پی خوشو لبینای جمعرد دوی بشی نو خویی بیت. محمد رامین چون لای بر فارسی بشی نو خویی و با رضامندی او لمروا و محمد دچت بودهای رامین. لم داده خنکار کی دیکش دژی کنایی صعیده، آو خنکاری لقی پزشکی. رامین محمد صعید به یکتر دانستند. تکیه سرتاج بگرندله و شکانی وانی امرال. خوبم، خوبم، باشم، این، این، اوه، من، من، من،, من. هستم، هستم، هم، خوش وقتم، خوشحالم، خوش, خوش آمدید، خوش آمدید. به بین. در مورد. در مورد. لبARE. در مورد شما با. در مورد شما با. لبARE ایوا لگال. با من. با من. لگال من. او, او او صحبت کرده صحبت کرده قصه ای کردوه او او او, او می میآید می آید دت به به بو به اتاق به اتاق بو هده بو هده خیلی خوب است خیلی خوب است زور بشم خالی خالی بتال تخت تخت قراویلا این تخت خالی است این تخت خالی است ام قراویلا بطال کمد کمود دولاب این کمد این کمد ام دولابه خواهش میکنم خواهش میکنم تکدکم خیلی ممنون خیلی ممنون زور سپاس خیلی خیلی زور محمد و رامين دتنبو حدكا حدكا لا نهومي دوهما رامين لا درگا عدو هردو دين نو جوركا سايد لا جوركا جو بگرن لا بوتواجي اوان سلام سايد سلام سايد سلام حال شما چطور است؟ سلام حال شما چطور است؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است خوبم متشکرم این آقا محمد است سلام حال شما خوب است؟ سلام حال شما خوب است؟ سلام سلام متشکرم، من سعیدم سلام، متشکرم، من سعیدم خوش وقتم، خوش وقتم خوش آمدید، رامین در مورد شما با من صحبت کرده خوش آمدید، رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است. خوب است. این تخت خالی است. خوب است. این تخت خالی است. متشکرم. این تقدیم است. متشکرم. این تخت من است. بله. این تخت و این کمد شماست. بله. این تخت و این کاموده شماست. خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین. خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین. خواهش میکنم. خواهش میکنم. یک را برازدکن من دونه بین او و تو که بیستن به فرسی استاش جرکیدی دیکه به فرسی و کردی دیبیستن سلام سعید سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ سلام احوالد چونه؟ خوبم متشکرم این آقا محمد است باشم سپاس. اوکک محمده سلام، حال شما خوب است؟ سلام، دی اتو چونی سلام، متشکرم، من سعیدم سلام، ممنونم، من سعیدم خوش وقتم خوش حال بوم خوش آمدید، رامین در مورد شما با من صحبت کرده بخیر بین رامین لباری تو و قسی کردوه سعید محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشوی ادبیات فارسی است سعید محمد لمروه دیت بو هدکی او خوندکاری ادبی فارسیه خوب است این تخت خالی است زور باشه ام قراویلا بطالا متشکرم این تخت من است. سپاس، او تخت که منه؟ بله، این تخت و این کمود شماست بله، او قرابیلو اوش دولابکه ایویا خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین زور ممنون سعید. زور ممنون رامین خواهش میکنم تکرکم که دیکه گله و توژ ک بگرن. لم و توجه دهن دقص روژانانه دست واژهن که ازظهر بکالکن. سلام سعید سلام حال شما چطور است؟ خوبم، متشکرم این آقا محمد است. سلام حال شما خوب است؟ سلام متشکرم من سعیدم. خوش وقتم خوش آمدید رامین در مورد شما با من صحبت کرده سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید او دانشوی ادبیات فارسی است خوب است این تخت خالی است متشکرم این تخت من است بله این تخت و این کمد شماست خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین خواهش می کنم دراوزا کان وردو وردق اشچینه کوتای برنامه کاه ودرم که سودوکلپتن ورگسبه محمد دوای ام آشناییه کتبو جانتاو کلوپلکان دیکه دبابو هودا نویکی او هوداکی دگوره چون هوداکی بوچو کو پر دنگو هرابو هیودرم هو لا هودے نو ده اسودا جا تا تو که با یک دگه و برنامه که دی که تنلم زنجیر برنامه آرستده بی همولاکتن به خودای گوره دست بیرم هر بجین خوشی و شادی و